قصه‌های های سوپی به روایت فضلالله محتدی شده از کانال هزار افسان مدیریت محمد جواد بوستانی روایتگر پریسا سائدی این داستان شاهزاد خانم سلیکه امروز میخوایم به سراغ افسانهای مجارستانی بریم. در زبان شیرین فارسی چند افسانه مثل این داریم که یکی از اونها رو برای شما میاریم. سلیکه در زبان مجار به معنای نسیمه. یکی بود و یکی نبود. دورتر از اقلیم هفتم و اون طرف کوه قاف و تپه بلور. اونجا که بچه خوک کتاخ دم دنبال چیزی میگشت. پادشاهی پسری داشت به نام یانوش یه روز پادشاه به پسرش که رفته رفته بزرگ می شد و به مردی می رسید گفت ای فرزند برو جهانگردی کن شهرها و کشورها رو ببین و چیزهای خوب رو یاد بگیر و جان و تن خودت رو با علم و دانش پرورش بده و از این را مردی دانا و کار آزموده بشو یانوش سخن پدر رو همون لحظه شنید. چوب دستیش رو برداشت و خورجینش رو به دوش انداخت و از مادر و پدر خداحافظی کرد و به طرف یک کشور ناشناس براه افتاد. یانوش رفت و رفت. در میان راه به مردی بلند، بالا و لاغرندان برخورد و اون وقت چنین آدمی رو ندیده بود. انگشت به دهان مونده خوب اون رو ورانداز کرد و سلامی گفت. مرد بلند بالا سلامش رو جواب داد و بعد از اون یانوش پرسید تو کی هستی؟ چی یا چی می مرد گفت من اسمم چاوک و مثل برق و باد و هم هم تر می دوم یانوش گفت دلم می ببینم این حرف تو تا چند اندازه راسته هنوز یانوش حرف در دهنش بود که ناگهان گوزنی از میانه بیشه و نیزار جلوی اونها پیدا شد. چاپ خیزی برداشت و با دو جهش به گوزن رسید شاهزاده یانوش گفت اگر راست گفتی و مثل برق میتونی بدویی بیا با هم دوست بشیم و بدون که در این دوستی پشیمون نمیشیم. اونها با هم پیمان دوستی بستند و دست به دست هم دادن و به راه رفتن و رفتن. در میان راه به یک پهلوون شونه که زیر کوهی رفته بود رسیدن شاهزاده سلامی کرد و پرسید تو کی هستی و ای؟ مرد گفت من کوهبر هستم کوه ها را از جا برمیدارم و به جای دیگه میگذارم و کوهی نیست که من نتونم اون را بردارم و فورون کوه رو بلند کرد و مثل کیسه گندم بر دوش گذاشت و برد شاهزاده گفت آفرین بر تو ای فرزند پدر آیا میخوایی با ما همکاسه بشی؟ کوفر گفت حتما از دل و جون با هم پیمون بستن و دست به دست هم دادن و سه نفری براه افتادن رفتن و رفتن تا به یک جنگل بزرگ رسیدند. در اونجا دیدن که مردی با سینه های په درختها رو فوت میکنه و تند بادی پدید میاد که درختها تکون میخورن و به زمین میفتن دوستان هم کاسب ایستادن و چون چنین آدمی را هرگز ندیده بودند، سرگردان و انگشت به دهن موندن که این دیگه چیه و کیه؟ شخص ساده پرسید نام تو چیه؟ گفت فوت با یک فوت بزرگترین خونه های آباد را ویرون می‌کنم و برومندترین ترین درخت را از ریشه می‌کنم. کنم. گفت تو همون کسی هستی که ما دنبالش می گردیم. بیا ما دوست باش. فوری دست به دست هم دادن و پیمان دوستی بستن و چار نفری به راه رفتن و رفتن. به یه تیرنداز برخوردن. شخصده پرسید. تو کی هستی؟ گفت. من استاد تیرنداز هستم. دونه فلفل رو, رو روی کف دست. آنچنان با تیر میزنم که دونه پخش و پلا میشه و کف دست آسیب نمی بینه. گفت. هنرتو نشون بده؟ فوری دونه فلفلی کف دست شاهزاده گذشت و با تیر زد بدون اون که به دست شاهزاده آسیبی برسه. اون رو هم به دوستی گرفت و پنج نفری به راه افتادن. رفتن و رفتن تا رسیدن به یک آدم خپله. شاخصاده ازش پرسید همشهری کجا میری؟ چی کاره ای؟ چی میکنی؟ گفت اسم من تپره. اگر سرم رو, رو روی زمین بگذارم، میتونم بفهمم هر کس چه دور باشه و چه نزدیک درباره چه چیزی فکر میکنه. شاختات از این برخورد شاخت شد و اون رو هم به دوستی گرفت و شش نفری از این کشور به کشور پریان رفتن. پادشاه پریان دختری زیبا داشت به نام سلیکه یعنی نسیم سبا. خیلی خوشگل و قشنگ و دلارا که در این دنیا لینگه نداشت. میرفت تندتر از باد سبا بله پادشاهی کشور پریان فرمانی نوشته بود که دختر من مال کسی هست که در مسابقه دو اون رو شکست بده و از اون جلو بیفته و اگر کسی به میدون اومد و نتونست از اون جلو بیفته به چهار چارمیخ کشیده میشه و از بین میره خیلی از بزرگان و سروتمند ها و شاهزاده‌ها به خاستگاری این دختر اومدن برای شکست خوردن و سر خودشون را از دست دادن پس از اون که این شش نفر از این کار با خبر شدن به پیشگاه شاه رفتن در اونجا چابک رو جلو انداختن و گفتن این دوست ما برای آزمایش بخت خودش برای این کار آماده است پادشاه گفت خیلی خوب تا به حالا سر 99 نفر از این جوان ها زیر تیغ رفته حالا نوبت سر صدمی در میدان جلوی کاخ پادشاه گروه انبوهی برای تماشا اومده بودند که سلیک پا به دو گذاشت و مثل باد دوید چابک با یه خیز و یک پرش سلیکهر رو عقب گذاشت دخترک که نسیم خونده میشد او تلخ و شرمسار شد و گریه را سر داد پادشاه هم به چابک گفت درسته که تو از دخترم جلو افتادی ولی بیگمان اون یک ناخوشی داشته که امروز نتونست از تو جلو بیفته فردا دوباره آزمایش میکنیم فردا هم نسیم نتونست به چابک برسه باز هم نسیم گریه و زاری رو سر داد و به سمت کاخ دوید پادشاه به چابک گفت این دفعه هم از دخترم جلو افتادی ولی هرچی هست باید بار سوم آزمایش رو براخت بندازیم تا براستیم بفهمیم فهمیم که در این آزمایش برد با تو هست یا دختر من. دفعه سوم شاهزاده خانم فکری کرد. انگشتر الماسی داشت که هر کس اون رو به میکرد نمیتونست راه بره و پاهاش به زمین میخکوب میشد. این انگشتر رو پیشکش چابک کرد تا از این راه بتون اون رو شکست بده. وقتی که به دو افتادن چابک نتونست به فوری پتر سرش رو به زمین گذاشت و از فکر نسیم با خبر شد. بیتیر انداز راز کار رو گفت اون هم فوری نگین انگشتر رو هدف گرفت و با تیر زد که یک با یک خیز و جست برای بار سوم هم چابک از شاخصاد نسیم جلو افتاد. شاخصاد نسیم باز گریه رو سر داد. بر اینکه ناچار بود زن چابک بشه در حالی که اون در پنهونی دلباخته شاهزاده یه شاهزاده یانوش شده بود. بله. دوستان کاسه پیش شاه رفتن. چابک گفت من دختر رو نمیخوام ولی به اندازه ای که این دوست ما کوه بر بتونه تلا به کلش بکشه به جای دختر به من تلا بدین. شاهزاده خانم نسیم خوشحال شد. پادشا هم گفت بیشتر از اون میدم که میخوای. بنابراین هرچی تلا و نقره داشت در دو نوبت هر نوبت هفت گاری آوردن و همه رو کوه بلند کرد و گفت اینا چیزی نیست. شاه به ناچار تمام کاسه ها و بشقاب ها و قاشق ها و هرچه تلا داشت روی اون تلاها ریخت و گفت ببر وقتی که کوف بر اون همه تلا رو دید گفت خب دیگه میتونم بگم بسته. دوستان به راه افتادن و رفتن ولی پادشاه از کرده خودش پشیمون شد که چرا هرچی طلا داشت به کوه برداد فکری کرد و شاهزاده خانم نسیم رو دنبال اونها فرستاد که با اونها باشه تا پادشاه به بهانه اینکه دخترش رو دزدیده و فرار کردن یک فوج سرباز برای پیگیری اونها بفرسته تا هم طلا و هم دختر رو برگردانند شخصده خانم نسیم از خدا میخواست که به هر ای شده خودش را به یانوش برسونه بنابراین به اونها رسید و به یانوش چسبید یک خورده که راه رفتن پتر سرش رو روی زمین گذاشت و گفت پادشاه یک فوج سرباز از دنبال ما فرستاده و میخواد ما را از میان برداره و نسیم و تلاها را هم پیش خودش برگردونه فودزن گفت راست میگی؟ گفت بله فودزن گفت بزنیم بیان. حالا دیگه نوبت هنرنمایی منه. شما کاری نداشته باشید. سربازها ها به اندازه یک تیر که نزدیک شدن، فوتزن فودی کرد که گرد و قبار وحشتناکی درست شد و همه سربازها ها رو پس زد و پراکنده کرد و شاید به اون طرف کوه قاف افتادن همشون. اونها هم راه خودشون رو با آشتی و مهربونی گرفتن و رفتن تا به کاخ شاهزاد یانوش رسیدن. در اونجا طلاها رو بین پنج نفر پخش کردم. زحم شاخصاد یانوش رو هم شاخصاد خانم نسیم برد. جشن عروسی رو به پا کردن و دیگهای بزرگ رو با نه جور آش بار کردن و توی طغار بزرگ کشیدن. من همونجا مهمون بودم. خوردم و نوشیدم و شادی کردم و حالا به خونم برگشتم.